من ناخدا یک ج... یکی دفعه کاریزمایی واقعا بعضی آدم دارن دارن بله ناخدا اصلا من هیچ احساس... ناخدا این نی... خلاف خندی من چی خندم میگم سلام اما این گسم ده ساله میشستم احوال شما خوب. یه بایی لبخ خیلی جالب بود، بایی که ما نمیدونم که کی, کی چی گفت، چه اتفاقی افتاده؟ بایی در وجود آقای احمد نظره تو راجع آخ, اخ، بهرام رادان چقدر شکسته شده نه خانم بهرام رادان چیه؟ اکبر عبدیل آغر کرده اصلا نشناختمش نه آقای خیابانی ریششون زده؟ نه علی هاتمی؟ کیا؟ رستمی؟ نه خانمیشون تام هستن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 باروز هنوز را شب تو کوچ کوچ مرا تو را لحظه های تنها سلام من فتانا هستم دارم برای شما می نویسم از یلدای یلدای یک واژه سریانی است به معنای تولد تولد مسیح حریرم 20 آذر مرد شنیده بودم مسیح زنده می کند.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 اس بیت میراسر را خوش از حال لحظه های دیده شو عاشقانه تنها بس پارم به سوی تم ما چو سوز سرما امشب غم تو در دل دیوان نگونجد گنج است و چه گنجی که به ویران نگونجد تنهایی امشب که پر است از غم غربت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 حتی به قزل های غریبانه دور دورست و چنام که غم قربتم امشب حتی به قزل های غریبانه نکن کرد. یدا که میآید یاد آن شعر شامرووی جاننم میافتم که میگوید؟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 روست بگو تا شب یلداست بگو تا نفسی هست بگو هر چی دلت خواس بگو خسته بابیتو شدم من شدم خاب شدم خسته از این انجراها منتظرت خواب شدم گریه بر این حال کشید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 این سرما از آتش هم بدتر است. سرمای زمحری است. ماس بگو راست بگو تا شب یام دوست بگو تا نفسم هست بگو هر چی دلت خواستی بگو خسته و بی‌تاب شدم منم شدم دیو شده راست عازین جان وانت سنت برو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 لحظه های رفته بر وقتی که بمبست قربت سایه ساره قفصم بود زیر رگوار مسیبت بی کسی تنها کسم بود وقتی از آزار پاییز برگ و با در게 میگرد ماستد